فصل سوم عیسیا بار دیگر به کنیسه رفت. در آنجا مردی حضور داشت که دستش خشک شده بود. فریسیان مراقب بودند ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا می دهد تا اتهامی علیه او پیدا کنند. عیسی با آن مرد علیل فرمود: بیا جلو بیست. بایست. بعد با آنها گفت: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن نجات دادن یا کشتن آنها خاموش ماندند عیسی با خشم به آنها نگاه کرد زیرا از سنگدلی آنها متاسف بود و سپس به آن مرد فرمود دستت را دراز کن او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد فریسیان فوراً از آنجا خارج شدند، تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن ایسا توتهه بچینند. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت، اده زیادی به دنبال او می رفتن. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمتهای سور و سیدون آمده بودند، این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدهام مردم دور باشد. چون آنقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می‌آوردند تا او را لمس کنند. همینطور ارواه ارواح ناپاک وقتی او را می‌دیدند در جلوی او به خاک می‌افتادند. و با صدای بلند فریاد میکردند تو پسر خدا هستی عیسی با تاکید با آنها امر میکرد که این را به کسی نگویند بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که میخواست پیش خود خوان آنها پیش او رفتند او دوازده نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد و قدرت بیرون کردن دیوها را داشته باشد. دوازده نفری که انتخاب کرد عبارت از شمعون که عیسی به او لقب پتروس داد یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا که با آنها لقب وانرجس یعنی رعداسا داد اندریاس و فیلیپوس و برتولوما و متا و توما و یعقوب پسر حلفی و تدی و شمعون فدایی و یهودای اسخریوتی که بعدها ایسا را تسلیم کرد. عیسی به منزل رفت، باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. وقتی اقوام او این را شنیدن، آمدند تا او را با خود ببرند چون بعضی میگفتند که او دیوانه شده است ملایان یهود هم که از اورشلیم آمده بودند میگفتند او تحت فرمان بعل زبول است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون میکند پس عیسی از مردم خواست که جلو بیایند و برای آنها مثلهایی آورد و گفت 'شیطان چطور میتوانند شیطان را بیرون کند اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمیتواند دوام بیاورد، و اگر در خانواده تفرقه بیفتد، آن خانواده نمیتواند پایدار بماند، اگر شیطان نیز علیه شیطان اقدام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمیتواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. همچنین، هیچکس کس نمیتواند به خانه مرد زورآوری وارد شود و اساسه او را قارت کند، مگر اینکه اول آن زورمن را ببندد و پس از آن خانه اش را قارت نماید بدانید هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است اما هر که به روح القدس کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد نه در این دنیا و نه در دنیای آینده عیسی این مثل را آورد چون می میگفتند او روح پلید داره. مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر دادند که مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را میخواهند. عیسی جواب داد: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ و به کسانی که اطراف او نشسته بودند نگاه کرده گفت: اینها مادر و برادران من هستند چون هرکس کس اراده خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من است فصل شهارم باز هم در کنار دریاچه جلیل به تعلیم مردم پرداخت جمعیت زیادی دور او جمع شدند به طوری که مجبور شد به قایقی که در روی آب بود سوار شود و در آن بنشیند مردم در کنار ساحل ایستاده بودند و او با مثل تعانیم زیادی با آنها داد در ضمن تعلیم بانها گفت گوش کنید برزگری برای کاشتن بذر به صحرا رفت وقتی مشغول پاشیدن بعض بود مقداری از بذرها در راه افتاد و پرندگان آمده آنها را خوردن بعضی از دانه ها روی سنگلاخ لاخ جایی که خاک کم بود افتاد و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شد اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختند و چون ریشهای نداشتن خشک شدند مقداری از بذرها در میان خارها افتاد و خارها روش کرده آنها را خفه کردند و ها حاصلی نیاوردند و بعضی از بذرها در داخل خاک خوب افتادند و سبز شده رشد کردند و سمر آوردن و حاصل آنها سی برابر شست برابر و صد برابر و بعد ایسا اضافه کرد هر که گوش شنوا دارد بشنود. وقتی ایسا تنها بود همراهانش با آن دوازده نفر درباره مفهوم این مسئلها از او سوال کردند. او جواب داد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 برزگر کلام خدا را پخش می دانه هایی که در کنار راه میافتند کسانی هستند که به محض اینکه کلام خدا را می شیطان میآید و کلامی را که در دلهایشان کاشته شده است میرو دانه هایی که در زمین سنگ لاخت میفتند مانند کسانی هستند که به محض شنیدن کلام خدا با خوشحالی آن را قبول میکنند، اما کلام در آنها ریشه نمیگیرد. و دوامی ندارد و وقتی به خاطر کلام، زحمت یا گرفتاری برای آنها پیش می آید، فوراً دل سرد می شود. دانه که در میان خارها می مانند کسانی هستند که کلام را می اما نگرانی های زندگی و عشق به مال دنیا و هوا و هوس و چیزهای دیگر داخل می شوند و کلام را خفه می کنند، و آن را بی سمر می سازن. و داناهایی که در خاک خوب میافتند به کسانی میمانند که کلام را میشنون و از آن استقبال می کنن و سی برابر و شست برابر و صد برابر ثمر میآورند. ایساب آنها فرمود: آیا کسی چراغ را میآورد تا آن را زیر تشت یا تخت بگذارد؟ البته نه؟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 و شاخه های آن آنقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند در سایه آن لانه بسازند. عیسی با مسائل زیادی از این قبیل پیام خود را تا آنجا که آنها قادر به فهم آن بودن برای مردم بیان می کرد و برای آنها بدون مثل چیزی نمی گفت. اما وقتی تنها بودند همه چیز را برای شاگردان خود شرح می داد.